حکایت هندویی نفتاندازی همی آموخت حکیمی گفت تو را که خانه نین است بازی نین است تا ندانی که سخن عین ثواب است مگوی من دانی که ننی کوش جواب است مگوی